کمتر از یک دقیقه ای بعد ازمه به کافه برگشت آستین ک چارلز را گرفته بود و او را کشان, کشان به دنبال خود میآورد. گفت: چارلز دوست داره برای خداحافظی شما را ببوسه. من بیدرنگ فنجان رو روی میز گذاشتم و گفتم که کار خیلی خوبی است اما اجباری در کار نباشد. دختر اندکی ابوسانه گفت: خیر. آستین چارز را رها کرد و او را نسبتاً محکم به طرف من حل داد. چارلز با چهره‌ای برافروخته جلو آمد و درست دیر گوش راستم ماچی مرطوب و صدادار کرد. پس از انجام این کار دشوار راه افتاد تا به خط مستقیم به طرف در پر درآورد. و نفسی از سر آسودگی بکشد که من نیمه کمربند پشت کتش را گرفتم. نگهش داشتم و پرسیدم دیوار به دیوار چی میگه؟ اخمایش از هم باز شد و با صدای جیغ مانن گفت قرار ملاقات اون گوشه و دوان دوان از اتاق بیرون رفت در حالی که احتمالا دوچار خنده های مداوم شده بود اسم ایستاده بود و دوباره دو که دو طرف پاهایش را به هم رسانده بود و پرسید یقین دارین که یادتون نمیره اون داستانو برای من بنویسین؟ حتما لازم نیست منحسرن برای من باشه. میشه که... گفتم که به هیچ وجه احتمال ندارد که فراموش کنم. به او گفتم که تا حالا برای کسی داستان ننوشتم و درست الان ظاهرا وقتش رسیده که دست بکار کار سر تکان داد و به عنوان پیشنهاد گفت. سعی کنین بی اندازه نکبت بارو و باشه. اصلا با نکبت آشنایین؟ گفتم که به طور دقیق خیر اما شب و روز به تدریج دارم بهتر آشنا میشم و سعی خود را میکنم تا به خصوصیاتی که او میخواهد برسم دست هم دیگر را فشردیم حیف نشد که ما در موقعیتی آرامتر هم دیگر را ملاقات نکردیم گفتم که حیف شد گفتم که به راستی حیف شد ازم گفت خدا حافظ امیدوارم از که برمیگردین قوای ذهنیتون همه سالم مونده باشه؟ از او تشکر کردم و چند کلمه دیگر گفتم و سپس او را که از کافه بیرون میرفت تماشا کردم. آهسته و متفکران بیرون رفت در حالی که به موهایش دست میکشید تا ببیند خشک شدهاند یا نه.